سلسل مباعث استاد پناهیان با موضوع چگونه امتحان می شویم؟ جلسه ششم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و حبیبنا بن قاسم المصطفى محمد O Allahs tybina, taahirin, almasoomin, siyum alhajah, baghiet Allah aladham, ruhii va arbaqul qalamina, lahul fida va launud da'im, Allah aqda ih majmain ila qiyam yomiddin. Rabbish fahli sadri va sirli amri, wahlu lughda tammi lisani yafquhu واقعا تعریف از بندگی و زندگی منهای مفهوم امتحان تعریف تکمیل و حتی صحیحی نخواهد بود ما اگر بخواییم زندگی رو تعریف بکنیم با همه مشخصاتش مفهوم امتحان رو کنار بذاریم به هر تعریفی درباره زندگی برسیم تعریف ناسحیح یا لاعقل ناتمامی خواهد بود ما به هر تعریفی درباره بندگی و دین و دیانت و معنویت بخواییم برسیم دین رو مجموعه از اقاعد و احکام و اخلاق بدانیم یا هر تعریف دیگری دقیق از این از دین داشته باشیم منهای مفهوم امتحان تعریف ناسحیحی خواهد شد یا لاعقل تعریف ناتمامیست سعی داریم در این جلسات یک نگاه امتحانی به دنیا و آخرت به مادیات و معنویات به تمام عباد زندگی داشته باشیم و این نگاه رو جاری کنیم این دیگه یک تذکر نیست، یک تذکر معنوی نیست، این یک موعظه نیست، این یک واقعیته، این یک جهانشناسی است، این یک حقیقت مهواری در معرفت ما نسبت به حسی است، در معرفت ما نسبت به زندگی و بندگی است. وقتی میگم زندگی و بندگی، سعی میکنم یه دوتا مفهومی رو انتخاب کرده باشم که همه ی شونات انسان رو دربر بگیره. مثال بزنم. شما مثلا در زندگی دنیایی خودتون ماشین میخرید کسی به شما ماشین میفروشه امتحانی به شما ماشین نمیفروشه که واقعا ماشین فروخته شما وقتی که ماشین میخرید امتحانی که ماشین نمیخرید واقعا ماشین خریدید انتخاب کردید بعد مخواید برید مسافرت از اینجا مخواید برید مشهد امتحانی که یه جاده رو انتخاب نمی که واقعا یه جاده رو انتخاب می کنید میرید بعد وقتی میرید زیارت امتحانی که نمیرید زیارت که واقعا میرید زیارت میگه من میخواهم برم زیارت بکنم مقرراتی رو که در طول راه را آیت امتحانی که مقررات سر راه شما نذاشتن که یه پلیسی مثلا اونجا نوزو به آزار داشته باشه بگه که اینجا بذار ما یه مثلا سرعت هفتاد تا بیشتر نشه ببینیم این چی جوری رفتار میکنه این کار رو نمیکنن که وقتی گذاشته سرعت هفتاد تا بیشتر نشه یعنی اینجا پیچ نباید بیشتر بشه برای امتحانه شما که نذاشتیم واقعیته شما با یک سلسله مقرراتی که حکایت میکنن از واقعیت دارید سر کار پیدا میکنید ببینید ما در زندگی خودمون چه بخش‌های مادیش چه بخش‌های معنوی با یک سلسله واقعیت‌ها مواجهیم با یک سلسله ارزش‌ها مواجهیم داریم زندگیمونو می‌کنیم امتحان قسمت‌های اندکی از زندگی ماست بله اون لحظه‌ای که آقای افسر راهنمایی داره از شما امتحان می‌گیره که ببینه گواهینامه بهتون بده یا نه وقتی میگه ترمز بکن امتحانت داره می‌کنه میگه برو داره امتحانت می‌کنه اون لحظه فقط بقیه لحظه ها رو تو امتحان نیستی ما در زندگی عادی خودمون دائما که در امتحان به سر میبریم به همین دلیل غفلت داریم در این که حیات ما واقعا اساسا همش امتحانه دین شبیه مقررات راهنمایی رانندگی نیست دین امتحانه البته توی زندگی که توی لحظه امتحان هم وقتی افسر روان هم می رواندیگه از شما امتحان میگیره از حقایق پرده بر می داره من نمی خواهم حسن و قبح عقلی رو انکار بکنم برای دوستانی که توجه به این معانی دارن نه وقتی که امتحان میگیره مثلا میگه که برو این برو سمت راست مثلا ممکنه ورود ممنوع باشه داره امتحانت می کنه ببینه ورود ممنوع می ری یا نه یعنی امتحانش هم با واقعیت‌ها ها سرکار داره ولی داره امتحانت می‌کنه. اونتا وقتای دیگه که ورود ممنون و تابلو رو اونجا گذاشتن برای امتحان شما نذاشتن گذاشتن کسی نره حالا اگه بری جریمت بکنن نکنن اونی بحث دیگه است و میگم اینجوری که با مقررات راهنمایی نمای رانندگی اینجوری که با زندگی مواجه هستیم اینجوری با اصل وجود خودمون در ارتباط با پروردگار با اصل زندگیمون در ارتباط با پروردگار مرتبط نباشیم ما هم مقرارات راه نمانند اگه تابلها رو میبینیم میگیم اینه تابلها امتحان ما نیست ولی هر اتفاقی بین تو و خدا میفته امتحان توست داره امتحان میکنه پول بدده این پول مال تو نیست امتحان توه پول نداده امتحان تو فقر واقعیت جدی نداره بیماری به بهت داده این امتحان تو تو واقعا بیمار هستی یه موضوع است نسبت به این که تو روی امتحان میشی با بیماری من نمیگم بیماری نیست چرا هست نمیگم واقعا این پولی که شما داری نداری چرا داری واقعا ولی این که این پوله رو داری فرع این ماجره است که شما داری امتحان میشی شما این استعداد رو داری شما داری با این استعداد امتحان میشی حتی ما درباره دنیا اگر بگیم دنیای ما موقت هست این تعریف دقیقی از دنیا نیست یعنی تعریف تمامی در از دنیا نیست فلسفه موقت بودن دنیا به این است که دوران امتحان موقت است نمی که انسان تا علال عبد امتحان بشود پس ما موقعتا در این دنیا زندگی می کنیم. یعنی اول امتحان رو بیار وسط بعد وصف با عظمت دنیا که فناپذیر بودن آن است اول امتحان رو بیار وسط بعد مالکیت تو رو برای امکاناتت اول ام... امتحان رو بیار وسط بعد بددارایی و فقرت رو بیار وسط اول امتحان رو بیار وسط بعد استعدادهای خودت رو بیار وسط نگاه امتحانی به همه چی داشته باشیم خب خود خداوند متعال همینو می فرماید چند بارم در قرآن کریم مکرر فرموده است ما آیاتی رو در این باره سالهای قبل مرور کردیم جلسات اول مرور کردیم خیلی دقیق هم خداوند متعال میفرمایند به حدی که هدف از خلقت امتحان ذکر میفرماید اللذی خلق الموت والحیات لیبلواکم بله خب منتها به این نگاه دفلت هست ما ماها صاحب همه چی میشیم بگذارید من حالا دارم دوباره بر برمیگردم به اصل بحث که دوستان اصل بحث رو قبول دارم که غم نمیکنن و دقت و پیگیری شما رو هم من واقعا تشکر میکنم بنده هم کاره نیستم این وسط یه گزارش دهنده هستم که خدمت سروران خودم درس بس میدم گزارشی میدیم یکی رفته سر کوچه یا تصادفی رو دیداره خبر میده و خبرنگار دیگه یه چیزی توی این مایه ها. ولی واقعا این نقص تعلیمات دینی ماست این نقص تبلیغات دینی ماست این نقص گفتگوهای ما با یکدیگر است. این نقصیست که فراگیره بعضیها بله بعضیها حسادت دارن بعضیها تکبر دارن بعضیها خصاصت دارن بعضیها عبادتشون زیفه بعضیها بددهنن بعضیها خوشدهنن بعضیها خوشنفسن بعضیها هر چیزی بعضیها داره ولی بعضی از عیبه هست که آدم نگاه میکنه کلیت جامعه باش درگیرن و باید این عوض بشه این تغییر بیده باید بکنه ما در این دنیا موقتا زندگی می کنیم. این جمله ناقصیه یعنی چی برای چی موقتا زندگی می اصلا مهم نیست ما موقتا زندگی می کنیم. مهمتر از این میدونید چیه اینه که ما در این دنیا بلانس امتحان بشیم خب البته یه نکته فرعی هم وجود داره که ما موقتا در این دنیا زندگی می که امتحان بشویم همیشه که نمیشه بعد انسان امتحان بشود پس موقتا هست خدا ببینید نگید که آدمها اول بچن، بعد نوجوان میشن، بعد جوان میشن، بعد میان سال، بعد پیر میشن. تو رو خدا اینجوری نگاه نکنید به زندگی. یه نگاه سطحی افتادون بشم اینجوری بگو، خدا یه مدت آدمو تو نوجوانی امتحان میکنه، بعد نوجوانی رو میگیره، با جوانی امتحان میکنه، بعد جوانی رو میگیره، با میان سالی امتحان میکنه، بعد میان سالی رو میگیره، بعد پیریم امتحان میکنه. این نگاه نگاه درستی. نگاه واقع بینانه است من بچه دارم یا بچه ندارم نه اینجوری نگاه نکن دارم و ندارم ببینید در اون حدیث شریف عنوان بصری آخر جلد اول بهار آقا امام صادق علیه السلام حقیقت و عبودیت رو میخواد به عنوان بصری اعلام بفرماید که خب حدیثی است که اهل معرفت خیلی به این حدیث اهتمام دارن و توجه دارن اونجا های عنوان بصری اومده میگه من میخوام از شما چیز یاد بگیرم. آی عنوان بصری اعتقادات ولایتی درست حسابی هم نداره، بلکه بگو نداره. منتها آقا امام صادق علیه السلام و عالم محترمی میشه مراد. آقا اول که راه نمیدند، وقت ندارم. بعد که اصرار میکنه میاد سوالش اینه که آقا چرا؟ من آقا بگو من میخوام از شما چیز یاد بگیرم. آقا میفرماد علم به تعلیم و تعلم که نیست. علم به داشتن حقیقت و عبودیته آقا حقیقت و عبودیت چیه؟ که من اونو داشته باشم سرچشمه علم بشه برای من حضرت می‌فرماد فرماد حقیقت و عبودیت سه چیزه کلیدی ترین اونها رو چی می‌فرماید؟ می‌فرماید که البته همش رو بخواد بخود تفسیر کنه اینجوری میشه همه اون سویجگی رو ولی می خودت رو مالک ندون خبا خودم رو مالک ندونم چی بدونم حتی این تعبیر که بگی اینا امانت دست شما این تعبیر کاملی نیست اینا امتحان مخواهی بشیم من شما امانت داری آقایشون صندوق امانت باز کردن پول بهش برید نگر یه چیزی هم بعد بهش بدیم بعدش که این امانت نگه داشته اینایی که امانت نگه میدارن یه چیزی هم تعریف دقیقی نیست از انسان که بگیم انسان امانت داره میدم بهت بعد میگیرم خب این انسان سوال براش پیش نمیاد آها ما رو سر کار ما رو خرق کردی اینجا صندوق دار امانات بشیم سوال براش میاد ته این امانت چیه امتحانه بعد البته یه وصف امانت هم این کنارش هست بله بلاخره خودتون مالک ندون صفت دیگری که میفرماید حقیقت و عبودیته این هستش که لا یو دب برالعبد نفسهی تدبیر را برای خودش نقشه نمی کشه. حالا چرا دوباره نقشه نمی دوباره چون امتحانه. و جملت اشتغالهی فی محمد راه الله تعالی می که و همه اشتغالش هم امر و نحی خدا را انجام دادنه. دوباره ببینید در این بحث حدیث عنوان بسری امام صادق علیه السلام می فرمات. حالا دوستان میتونن حدیث عنوان بسری را در اختیار رفه ها قرار بدن خیلیاتون هم اهل مراجعید اید راحت هم دیگه الان با با یه دونه کامپیوتر عنوان بصری و بعضی از این کلمات رو بنویسید تو کامپیوتر تو اینترنت براتون حدیث عنوان بصری رو میاره دیگه الان همه چی راحت شده در این حدیث شریف لا و دبر العبد لنفس هی تدبیری که از جملاتشه هر سه تا جمله‌ای که بر میگرده به حقیقت عبودیت تهش امتحانه به تعبیر دیگه‌ای گفته شده خودتو مالک ندون اینا برای امتحان بدداده شده برای خودت نقشه نکش نقشه رو خدا میکشه برای امتحان ما تمام مشغولیتت انجام وظیفت باشه ما چند شب پیش اینجا عرض کردیم انجام وظیفه نه حل مسئله من مشکلاتی دارم تو هیچ مشکلی نداری جز این که باید امتحان پس بدی تو بقید درنا مشکلت اینه نه من یه مسئله‌ای دارم اون مسئله امتحانت تو بعد ببین با این مس امتحان چگونه برخورد کنی من مریض شدم باید برم دکتر تو با مریضی امتحان شدی حالا وظیفت بری دکتر رابطه خودت با مسئله قطع کن این وسط وظیفه رو بیا وسط ما چند شب پیش گفتیم دیگه تو همین حدیث عنوان بسری چرا می فرماد عبد باید همیشه مشغول امر و نحی الهی باشد یعنی شما وقتی که میری حل مسئله بکنی وظایف الهی رو دور میزنی. اصلا وظیفت چرا اومده این وسط بیارنی که امتحان ناموس خلقت. و شما نباید به خاطر سختی امتحان یه دفعی برخورده با هستی با کائنات با همه چی تغییر پیدا بکنه ما بعد به همه چی نگاه امتحانی داشته باشیم خود ما هم مثلا برای همین امتحان ها آفریده شدیم بله حقایقی هست در آلم پروردگار آلم هست ما رو به بهمون علاقه داره ما هم خلق شدیم که دیگه نابود نشیم خب تا اینجا تموم شد از این به بعد اگه هر چی میخوای بگی یه دونه امتحان باید کنارش بگذاری و قبل از اون باید امتحان رو ببینی ما الان داریم امتحان میشیم ما همین الان با این صحبت داریم امتحان میشیم الان این یکی از مرحله امتحان ماست که این حرفو به گوش ما برسه <تصفيق> نگاه امتحانی داشتن به هستی یک نگاه هوشمندانه مطابق تعلیم و تربیت قرآن و یک نگاه بسیار نجات دهنده انقدر آثار و برکات داره که حد و حساب نداره انسان رو خیلی در پناه خدا قرار میده دیگه نمیدونم چقدر آثار بگم که دیگه بحث مفصل خواهد شد حالا رسیدیم به این سؤال خداوند متعال چجوری ها از ما امتحان میگیرن؟ قبلا هدف امتحان رو بحث کردیم هدف امتحان به یه تعبیر خلع تکبر از دل هست چرا این تکبر خیلی مهم شد بحث مفصلی داره اصلا آدم چون برای خدا آفریده شده و خدا خیلی بزرگ ما کوچیکیم یه تقاضای بزرگ شدن فطری و ذاتی تو وجود همه ما است اصلا دوست داریم بزرگ بشیم ما همین بزرگ شدن رو در ارتباط با پروردگار و عالم تعریف نکنیم هی می‌خوایم بزرگتر از همدیگه بشیم <تصفيق> هی هم می‌خوایم کیف بکنیم از اینکه بزرگتر از دیگران بشیم هی hey, بزرگی رو تو مصادیق غلط پیدا می‌کنیم هی hey, راه‌های غلط برای بزرگ شدن ولی بزرگ شدن آرزوی انسانه بچه‌ها بپرس که کفش بزرگترارو میپوشن هی hey, می‌خواد بزرگ بشه بعد بزرگترام مسخرهش می‌کنن میگن تو می‌خوای بزرگ بشی ما پشیمون شدیم می‌خوایم کوچک بشیم من این حرفا می‌زنن این از همونجاست این علامت خداگرایی این انسانه از همون سنی که بچه‌ها دوست دارن بزرگ بشن و ادای بزرگوار در میارن از همون زمان نماز بعد بهش یاد بدی الله اکبر خدا بزرگه با بزرگ آشناش بکنی یعنی بزرگتر من کوچولو تو هم و الی اخر تکبر چرا اصلا اهمیت پیدا کرد حالا بگذاریم خیلی بحث مهمیه ولی تکبر با امتحان از دل انسان خارج میشه امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود یه تعبیر دیگه‌ای حا تکبر خارج میشه چه اتفاقی میفته آن روی سکش اتصال به پروردگاره عشق به خداوند متعال قرب به پروردگار عالمه یه تعبیر دیگه اش یه کمی اومانیستی یه کمی انسانشناسانش چرا خدا امتحان میگیره برای اینکه استعدادهای بالقوه شما شکوفا بشه به فعلیت برسه آموزش پرورشی و اومانیستی هم میشه اینجوری توضیح داد حالا اون استعدادهایی نهفته در رأسشون خداپرستی و عاشق خدا شدنه <تصفيق> خیلی ساده است یعنی با سه تا تعبیری که به ظاهره نه هم مجزان ولی با همدیه کاملا یگانا از عباد مختلف دیدی تعابیر مختلف هدف امتحان چیه؟ برای اینه حالا دیگه چرا اصلا این بحثات درست شده؟ یه مقدار بحث هم که سال گذشته انجام دادیم. بگذریم از اون حرفا. ما در مقابل امتحانهای الهی در بحث امتحانها غیر از هدف یه مدهبه دیگه هم گفتیم. اون هم این که امتحانهای الهی متناسب با ما هستن. هر کسی رو خدا یه جوری ساخته متناسب با اون امتحان درست که. خدا این بچه رو درست کرده این پدر مادر بد اخلاق یا خوش اخلاق یا نیمه خوش اخلاق نیمه بد اخلاق یا برای این گذاشته میگه بابایی من چرا اینجوریه خب برای اینکه تو امتحان بشین آدم باباشو که عوض نمیکنه که اخیرن روی مردم زیاد شده همسرشون رو عوض میکنن باباشون که دیگه نمیتونن عوض بکنن که این امتحان شماست ترلایی شده برای شما هم هست خدا شده یه جوونی اگه از داره هست از پدر مادرش شکنجه میشه یکم دقت بکنه که چرا این امتحان در او برای او ترلایی شده از قبل از این که به دنیا بیاد میفهمه اصلا چه وضعیتی داره از امتحانات خودش رو میشناسه و خدا از او چی میخواد و تو چه زمینه‌ای باید رشد بکنه و الی آخر وقت جالب من یه نکته جدیدم به شما بگم تا قبل از اینکه به بحث جدیدمون وارد بشیم نکته است خدا جالبه برای من خسته نمیشه از امتحان گرفتم <تصفيق> خیلی جالبه لب... شما هم لبخم بزنیش کار نداره خسته نمیشه امروز از شما یه سری امتحان گرفته شکست خوردی پیروز شدی در... پشت سره هم در به کردی گرفتی خوابیدی تا بیدار میشی خدا شروع میکنی امتحانو خدای وایست ما بیدار شیم یا <تصفيق> آب به صورت رو بزدیم من نه تو همین آب به صورت زادن ما یه ام حالا ما خواهید چگاه کنیم؟ باید برو تو بگم میری تق میخوری زمین بیا البته امتحانهای بی صدا داریم اینجا تق داشت درسته؟ امتحانهای بی صدا هم هست میری شیراغو باز میکنی آب میاد دو دستتو نمیست که این دفعه امتحان نمیگیری نه چقدر آب لطیف و آب شستی و تمام شد و نه این دفعه مست مثل... که نه اینم امتحان بود آدم حسابی ها این یه امتحانه تا آب می‌ریزن به صورتشون می‌گن خدایا الْهَمْدَوْلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاعَ تَهُوْرَ می‌خواست امتحان کنیم من شعور دارم، معرفت دارم دوزار آدمم، عیسیت دارم، شرف دارم بفهمم این آب لطیفت، ازت تشکر کنم، فهمیدم امتحان‌های بی‌سرصدا داریم، امتحان‌های که تقصدا داریم، به هر دو تو رو خدا یکمی با امتحان زندگی کنید آخه به ما میگم با خدا باش آخه من با خدا باشم چیکار کنم با خدایی که داره 24 ساعت با کار رو میکنه یعنی امتحانت میگیره موضوع امتحانه که وسط میکشی با خدا بودن معنا میده با مقدلات او یعنی خدا رو میبینی، خدا رو لمس میکنی، خدا رو حس میکنی، صداشو میشنوی باش زندگی میکنی، باش حرف میزنی، باید حرف میزنه اینقدر خوبه خدا با سکوت با آدم حرف میزنه با زبان امتحان با آدم حرف میزنه آقای دولابی یه حرف قشنگی میزدن یه زمانی ایشون دیگه یه زاوی منحصر به فرد، یعنی از این زاویه دیدن و الله میشه از زاویه عمومی که دید نگاه کرد به این صحنه میگفت مثلا یکی به درستی تعریف تو کرد گفت بابا تو چه بچه خوبی هستی بدون اینکه من ناز به انرژی داشتی خدا رسونده بگو خدا شکرت حال دادی به مامامو تحویل گرفتی ها یکی ارا رسیده تعریفت کرده تو کیف کن خدا تشکر کن البته نگاه تخصصی ایشونه نگاه عمومی نیستش که آقا مواظب باش خراب نشی آقا شما تعریف نکنید خودشو خراب میکنه الان نگاه عمومیه ولی ایشون نیست بلده نگاه مثبت بکنه و خراب نشه رایشو به بقیه هم داره یاد میده خدا یادو چقدر مهربونی دیدی دی دلم خسته شده یکیو فرستادی منو ناز بکنه ممنونتم ما خودتم مستقیم ناز میکردی قبول داشتیم حالا اینم فرستاد ببین نظر مثلا عرض میکنه هر لحظه هر لحظه داره بوت کار میکنه یعنی امتحانت می‌کنه امتحان امتحان فقط بازم ما داریم کشیده میشیم به حرفهای اصلی و کلیدی من ب... هم استقبال های شما هم برخی از سؤال های شما من رو وادار میکنه به اینکه بیام یه دفعه وسط بحث روند بحث رو متوقف کنم یه کمی به طور کلی در مورد امتحان صحبت کنم یکی از معانی امتحان یکی از عباد یا لوازم امتحان تمرین دادنه هر روز شمار می پای آب لطیفه چیزی داره هی شمارو تمرین می ده. امتحان یه معناش تمرینه اصلا امروز امروزم تشکر کن آه آفری آه آب لطیفه دیگه من خرق کردم برات می دینی من خرق کردم تشکر کن دور فردا همی آب دیگه آب هست هنوز امسال هم تا آب بند نیمد دیگه بله بله بله باید خاک مال می کردی خودتو حالا تیمم تیمم می کردی خب الان دیگه تورو ت... همین که داره تو رو وادار میکنه به یه رفتار خوب این ام... اسمش امتحانه دیگه امتحان اینه تو رو وادار میکنه به شکر هی hey, تمرینت میده همیشه با حادثه نباید تو هم بشه که تقیب در و دیوار بخوری بعضی فقط تقیب در و دیوار میخورن امتحان رو میخورن تو اون لحظه ببینن بعضی ها که اون لحظه هم امتحان نمیبینن فقط بلا من چیگاه کردم خدای من رو زد خوای نکرد نه اون گناهایی که کردم به خاطر اون گناهارو که ای می‌خواستم بزنم نابودت کرده بودم این همینجوری زدم برای اینکه تازه زای بچه‌ی خوبی بودی شاید محکم‌ترم میزدم اون گناهاتو که بعدم میزنم ای این الان منو زدم برای رشدت برای اینکه استعدادات شکوفا بشه زودی نام اطلاعات و امتحاناتی که سر راه میاد ناشی از گناهانتون ندونید شو خدا بخواد گناههای ما رو با ما تصفیه کنه کار می‌بره خب حالا خدای چجوری امتحان میگیری؟ ما الان چند تا نمونش گفتیم با آب لطیف برخورد میکنی یه جور امتحان نعمت یعنی یه جور امتحان من من یه مستاق نعمت رو گفتم آ. بعضی بعضیا خدا شایده نمیدونم چجوری فکر میکنن اینقدر مللغتی هن که دیگه اصلا کفر آدم در میارن میگه اونی که گفتی با آب داره آدم امتحان کنه آیه روایتش گ خب بنده خدا امت پیغمبر مگه نفرمونم با نعمت امتحام میکنم مگه آب نعمت نیست نعمت که نیست سنگ که از اون به سرت نرسیده که خب ما میستاقی ندیده همون روایت گفتیم دیگه میگه نه اینم هم گفتی باید روایت باشه واقعا فاجعه اینجور تفکرات بعدا چه خواهن شد یه ذره از این فکر کنه میگه این ده تا قسمت صحبتتونو روایت کنه یه قسمتش یه کلمه گفتم اون رو نخوندید خب یه کمی هم خود فکر کن زحمت بکش اصلا خدا مأمور کرده پیامبر گرامی اسلامو فقط کتاب یاد نده و يعلمهم ال... کتاب ول خودت هم بفهم جونم به اونایی که خیلی از روایت رو خبر ندارن همینجوری فکر میکنن اپیشو خودشون من دراوری یه حرفی میزنن نه اینکه برن بالا منبر حرف بزنن اون که میره منبر بعد عمرو بررسی کرده باشه یا حرفی میزنن ادم بعد علما میگن آره این روایت داره حامی های دولابی خدا رحمتش بکنه که از حرفی ازش به میون اومد همینجوری بود من علمایی رو میشناستم به شدت مقید به روایاتم مینشستم با این من تعجب میکردم که آخه شما چه جوری میگه هر چی میگه روایت شما میش میگیم میگه می, می این روایت داره نخونده اون خب چشم های حکمت از قلب بر زبان جاری بشه برای ادم حساب اینجوریه ولی به هر حال الان بعضی خیلی سخ گیرن زود این هم میخوان نه اون روحیه بدی اون روحیه رو باید گذاشت کنا چیز عجیب غریبه بنده نگفتم ما ببینید، آقا به آب میرسین امتحانه یعنی چی به آب میرسین امتحانه آقا امتحان یا با نعمت یا با نعمت با هر دوش هست آبم نعمته راخرا اون چند تا ناسازای محترمانه این که گفتیم شرف دارم نمیدونم آدمم شعور دارم میفهمم با تشکر بکنم اونها همش فش بود دیگه ما مثبتشو گفتیم یعنی کسی که شکر نمیکنه از یه نعمت یعنی اونها رو ممکن نداشته باشه یا نه تا یه نسبتی خب حالا خدا چه جوری از ما امتحان میگیره با چی از ما امتحان میگیره به شما عرض کرده بودم یکی از مشهورترین آیات قرآن درباره انواع امتحانات الهی رو پیدا کنید و مطالعه کنید پیدا کردن دوستان بعد گفتم در این آیه قرآن اولین امتحان که گویا شایع ترین نوع امتحان هست و دیگه این امتحان به حوادث بیرونی هم ربط نداره در درون روح ما به طور دائم جاریه ذکر میشه و معمولا به شدت مورد غفلت نه فقط امتحان مورد غفلت این مورد از امتحان که شایع ترین هم هست به شدت مورد غفلت و خداوند متعال با عنوان اولین مورد امتحان ذکر میکنه آیه قرانش رو تلاوت بفرمایید ولا نبلونکم بشیئا امتحانتون میکنم به چیزی از این قبیل به شیعن منل خوف بعد از خوف گرستنگی بعد نقص اموال و انفس و سمرات و بعد مسائل بعدی اولی نوع امتحان خداوند متعال از ما چیه؟ امتحان با ترس می ترسونه ما رو بذارید این عبارت رو عرض بکنم در ذهن شریف داشته باشید بسیاری از امتحان‌های ما بلا نیست ترس از بلا بسیاری از امتحان‌های ما نعمت نیست ترس از از دست دادن نعمت است ترس از نرسیدن به نعمت است تو بدون دران امتحانت میکنن ترس‌های بی خودت بریزه وقتی خدا میترسونت ندت نترس خدا من رو می ترسونه من نترسم خب بله دیگه امتحانه دیگه می خواد ببینه چی کار میکنی حالا ما باید بترسیم نباید بترسیم باید بترسیم و فاصله بگیریم باید برعکس ترس عمل بکنیم همه اینها هست ولی مورد اول از امتحانه ما ترسه بسیاری از بلاهایی که ما ازشون می ترسیم بر سر نخواهد آمد و در طول زندگی نمی آید فقط می ترسیم ما در همان ترس از بلا رفوزه می شویم در امتحان نوبت به این نمی رسد که بلا سرمان بیاید اصلا یه جور دیگه عرض بکنم خداوند متعال یه سری بلا انتخاب کرده بنده هاش بده جمعی فردی برای هر کسی یه جوری با اونها اینها رو امتحان کنه یه سری هم نعمت جدای از این نعمت ها و بلا یه سری هم ترس میده و شاید اکثرش همین ترس ها رو میده چجوری زندگی انسان رو خداوند متعال ترراحی میکنه؟ که حتی تو این ترراحی ها شخص شخیص لعین ابلیس هم وجود داره که ما رو به ترسونه حالا بحث مفصلی داره شما تو شبان روز باهاش درگیر هستی پیروزی در امتحانات الهی چیه؟ صبر در بلا چقدر اهمیت داره از اون بالاتر؟ نترس در ترس نترس ایمان داشته باش به خدا؟ اصلا کار به صبر س... نمی کشه من که هنو بلا نفرستدم تو صبر بکنی که من با دلت بازی کردم یک کمی دل بده هنو به عمل نکشیده هنوز هیچ حادثه ای در بیرون نیست تو دل تو جاریه حوادث یه لحظه آدمو امتحان می, می کنن وقای واقعیت ها از یه جهتی انسان رو درگیر می ولی وقتی که امتحان اومد توی دل جاریه در وجود انسان همیشه یکی از امتحان ما ترسه هر موقع ترسیدی بدون امتحانه حالا باید با شگیری برخورد کنی اولم بگو این ترسه فقط معلوم نیست واقعیت داشته باشه ثانیه وقتی که ترسیدی برگرد اون مقدمات کلی که کلاس اول ابتدایی بهت یاد دادن اونها رو یه بار مرور کن خدا من دوست داره؟ یا دوست نداره خدا من داره یا نداره؟ خدا من رو میبینه یا نمیبینه؟ خدا با من دشمن شده به این سادگی خدا منی با کسی دشمن میشه؟ یه جایی ما صبا داریم بحث میکنیم سر اینکه خدا ما رو دوست داره روز اول هم من به دوستان عرض کردم که من میخوام یه چیزی بگم که می‌دونم نمیتونم بگم نمیتونم اثباتش کنم دیگه هر روز افتادیم به التماس و اینا که آقا و خدا حالا شما کوتاهی خودتون بیاد جوری قبول کنین خدا دوستتون داره نمیشه اینو ثابت کرد این باید انسان شهود بکنه امتحان ترس برای چ... خدا چرا ما رو میترسونی چمور میترسونی هستن فلسفه امتحان چی بود یه بار دیگه اون فلسفه رو مرور کنید همین ترسی که کلی تکبر آدمو میریزه یعنی میخوام دیگه لاتیو چاله میدونی صحبت بکنین دیگه اصلا نمیشه دیگه تو ادبیات دیگه‌ای اون قنای لازم رو نداره که ما رو کمک کنه اینجا یعنی جوجه پخ کنن زرد کرد قیافت هی کمی قطعا بیا چه خبرته اخراجا لتکبر من قلوبه هم ترسیدی نماز بخون و خدا من خودم اصلا نوکرم ببین آه من خودم خودم خودا شدم خودا آمدم نه ترس اون مارو قوت قلب پیدا میکنی ترس برای چیه گفتیم تکبر بره اتصال به پروردگار عالم پدید میاد ترس برای اینه که کچولو برو بقل خدا حالا من الان به شما میگم کوچولو برو بغل خدا کوچولو میگم میگه این به کدوم کوچولو میگه مگر چند تا کوچولو تو جلسه است نه شما محاسن سفیدا رو میگم که برای خدا هنوز خیلی کوچولویی یعنی شما وقتی که نوزاد بودی تو بغل بابا تفاوت قدیت با بابا چقدر بود یک متر و 20 سانت 3 سانت بوده دیگه لا اون وقتی که بابات مینداخت و هوا میگرفت و خوب شد تو اون وسط یه وقت سکته یه چیزی نزد بابات که ول کنه تو رو رها کنه اون موقع که خیلی کوچولو بودی جمعه میکرد مامانت دیگه جزئیاتشو توضیح نمیدم خب اون موقع شما چجوری میرفتید تو پناه مامانت چجوری وابسته بودید چجوری آویزان بودی چجوری همه هستید مامانت بود اون موقع صد و بیس سانت فرق داشتی با بابات. الان چقد با خدا چند سانت با خدا فرق بدین کوچولو ریز میزه چقد ما غلط انداز شدیم فکر کنم بیشتر از سجاده و خدا و معانی حقیقی آینه رو نگاه می‌کنیم هیکل حمزاتی برای خودت علکی بزرگتر جلسه شما میخواید مناجات بکنید مثل اون کچولهایی که تو بغل مامان و باباشون هستن اونجوری بچسبونید خودتونو به خدا یک کمی از امام سجاد علیه السلام یاد بگیریم یک کمی از امیر المومنی علیه, علیه السلام یاد بگیریم ماها به خدا یه بادی و قبقب مندازیم موقع مناجات اصلا ارتباط نمیگیریم با خدا انگاه رفتیم مزاکره مذاکره یک به علاوه یک تو یک... یکی خدا هم یکی خب خدای شما نظرتون چیه بنده بفکر میکنم اینجور بشه بهتره حالا شما بفرمین نه خواهش میکنم خواهش میکنم شما نه شما حالا بزرگواری بفرمین این اصلا ریختش اصلا انا رب بکنم الالا تو خود تو همقباری خدا هم همقدر خدا میدونی آقا چه خدایی خدا نیست که تو رفتی در خونش انگار رفیق مرحومشه که نیست این هست نه شما همه ریز ریزه میزه خدایید اینو باور کنید کچولوی خدایید میترسوندت برای اینکه بری بقلش هدف امتحان چیه؟ هدف همه امتحان همینه هدف امتحان چیه؟ برای اینکه استعدادهای بالقوه آدم به فعلیت برسه میترسوند آدم بعضی از استعدادهاش فقط با ترس بالقوه میشه ترس خیلی به فعلیت میرسونه استعدادهای آدم رو آدم رو وادار به فعالیت میکنه تازه اونم برنامه داره اونم سهمیه داره تو چجوری باید بترسی؟ تو حق نداری یه جوری بترسی که احسابت بهم بریزه استرس بگیری؟ تو حق نداری یه جوری به ترسی که روان پریش بشی تو حق نداری یه جوری به ترسی که ارتباطت با خدا هم قطع بشه به یعص برسی تو, حق... تو فقط یه جوری به ترسی که یه ترکتی انجام بدی نه اینکه که به ترسی که نابود بشی مادرها یه کمی ترسشون ممکنه از پدرها به صورت جنتیک بیشتر باشه موازف باشن این ترس رو به فرزندان خودشون منتقل نکنن بی حساب کتاب اصلا ما ها گای از اول تربیت می‌خوایم بکنیم بچه‌امونو صرفاً با ترس نه نباید باید اینجور باشه خدا ما رو با ترس امتحان میکنه وقتی میگم با ترس پس خیلی از بلاها نمیاد فقط ترسش میاد همین الان خیال راحت کن همین خود این معرفت کلی به آدم آرامش میده تو از بلای ترسیدی او گفتن 90 درصد ترس‌ها هیچ چی توش نیست پس بی خیال فقط ترس آرام باش چرا میخواییم به ما آرامش بدی چون میترسم من و شما در اثر ترس زودی نه اول بریم طراغ اسباب و وسایل اول خدا دور بشیم اول این اون رو التماس کنیم اول زلیل حقیر دیگران بشیم اول از مستکبرین آلم به ترسیم و زمین بخوریم خاک بر سر این ترس که بدترین این زلتیه که انسان میتونه دوچار بشه آه ترس که خوبه داشتی میگفتی ترس ما رو میبره تو بغل خدا آخه تو که میترسی که بغل خدا نمیری که تو میترسی از خدا دور میشی کافر میشی بابا نترس اگه میترسی میری بغل خدا که خدا بهت قوت قلب میده نترس عزیز من ترس باید باشه ولی باید ما رو به آقوش خداوند متعال ببرد ترسی که ما را به آقوش دشمنان ما ببرد آن ترس زشت است ترسی که ما را زلیل غیر خدا کند آن ترس زشت است ترس مطلقا که زشت نیست ترس از دنیا هم مطلقا نیست، ترس از دنیا و ترس از آخرت و ترس از بلاها تو را باید با آقوش خدا برد. این ترس ترس ممدوهیه آقل محتاط میشه میترسه خطر نمی کنه به ترس برو به سراغ خدا از فقر میترسی صدقه بده فرمود صدقه بده تا فقرت برطرف بشه مگر نمیترسی از فقر میترسی صدقه بده بعدش هم طوری نترس که ارتباطت با خدا قطع بشه، طوری نترس که ارتباطت با دیگران برقرار بشه. خلاصیه سخنی ناس که ترس رو نمیشه همینجوری گفت بعدش یا خوب بس. ولی بدانیم این ترس رو خدا تعبیه کرده است در زندگی ما. بگذارید من قبل از این که وقت به پایان برسه چند آیه رو وایت از ترس بخوانم. تکلیف به سادگی مشخص نمیشه که ما ترس رو باید دور بندازیم اصلا نباید بترسیم یا باید بترسیم تکلیف کاملا مشخص نمیشه حالا انشاءالله در مدرش کمی صحبت میکنیم شما ببینید میفرماید شدت الجبن من عجز نفس و ضعف اليقین همه ی آلم فدای کلمات درربار امیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام چقدر دقیق این تعابیر رو به کار گرفتن حضرت میفرمد شدت الجبن شدت جبن اگه یه مقدار ترس باشه این تحلیل رو نداره ترس زیادی بشه این تحلیل رو داره منعجز نفس و زعف یقین یک توش زعف شخصیت داری تو خوب بار نیومدی، تو قوای خودت رو شکوفا نکردی، خوب تربیت نشدی، خوب رشد نکردی، تو خوب مایتی بار نیومدی، خوب برنامه ریزی برای رشد استعدادهای خودت نداشتی. دو ارتباطت با خدا قلطه، ارتباطت با خدا ضعیفه. عجز نفس آدم آجزی هستی، ما توانیم رو دریافت نکردی. من عجز نفس و زعفل یقین، در مقابل ترس نباید عجز نفس داشت نباید زعف یقین ترسیدی برو تو نفس خودت قوای خودت پیدا کن بلفعل کن فلسفه امتحان مگه بلفعل شدن قوای وجودی نبود تو میتونی و زعف یقین و ارتباطت با خداوند متعال کمه بعد در روایت دیگری حضرت میفرامد الجبنو ظلون دلو ظاهرون ترس یک ذلت ظاهره مثلا در جنگ ها در خیلی چیزا همین الان تو ورزش تو خیلی از مسابقات تو خیلی از مسائل تو بیماری شفای از بیماری تو استفاده از استعدادهای ذهنی ترس نابود کننده است مادرها اینقدر بچه‌ها رو نترسونید تو کوچیکی عادتشون ندید به ترسیدن میخواد شر ازیت بچه رو از سر خودش کم بکنه زود اینا اول میترسونه اول این کاری که میکنه میترسونن و این دیگه چی شده در میاد از آب بعد یه آقا چرا شما نمی... مسجد نمیبریدین بچه‌منو خوب گون زدی بچه‌رو رتو بار کردی بعد اردید چیزیش نمونده مسجد بیاد درست بشه مایه خدا چقدر خرچ کنیم خدا شخصیتش نابود شده انسان ترسویه الهی من فدای حضرت امام رضوان الله تعالی علی بشم می‌فرمود من این احساس ترس هیچ وقت تجربه نکردم مردم میگن ما میترسیم منو داغ یعنی هیچ ترسی لذا نمیتونست ایمان حضرت امام رو به چالش بکشه ترس که نداشت ایمانم که بداشت بشم داشت چی میشه دیگه در اوج قدرت و اقتدار یه حرفی بزنم چون من آدم سیاسی نیستم اینو هاشیهی میگم و تو نظر میدیم یالا اشکال نداره که نظر بدیم برسه سیاست همه میتونن نظر بدن دیگه چه اشکار نظر میدن همه آدما در مورد فوتبال همه آدما بالاخره این چیزیه که داریم میبینیم زمین بازیه من میگم آگی یه مسئولی یه زمانی دستش کج بوده حالا دیگه یه دزدی کرده بدبختی یالا بچه خوبی شده دلیل نمیشه که شما حتما بهش مسئولیت ندید این همچین فاجعه نیست ممکنه یه بار یه غلطی کرده بعد دیگه این کارا نمیکنه دلیل نمیشه که اگه یه مسئولیم این ماجرا خوبم ببین <تصفيق> <تصفيق> اگه یه زمانی یه فساد اخلاقی هم داشته حالا فساد اخلاقی تو کدوم میدونی فساد بوده شاید اصلا فساد نبوده تو اینجوری رو تو بکنم اون وقت بعد نمیشه که حالا بچه خوبی شده دیگه این که دیگه الالعبد که نباید شما حیز انتفاو رو ساقتش بکنی بگو دیگه آگه مسئولی اگه سواد مواد نداشته باشی موادی که هیچ چیز نه سواد اگه نداشته حالا سواد که دارن الان دیگه همه حد کارشناسی رو دارن ولی خب معلومات زیادی نداشته باشه مدیریت بلد از آدم با معلومات استفاده میکنه کنه فاجئه نیست خب بهتره با سوادتر خب بهتره ولی الان دیگه فاجئه نیست ولی جون مادراتون اگه یه مسئولی اهل ترس بود تو رو خدا نذاری داشتر کار تو رو خدا نذاری داشتر کار این جامعه رو به لجن میکشه جامعی با این همه دشمن رو به تباهی خواهد کشید شجاع باشه این شجاعت رو خیلی روش تعمل بکنید یکی از ویژگی‌های عجیب و قریبه در اخلاق اون وقت اون شجاعتی که نه با تحور ما بخواییم اشتباهش بیگیم بیکلگی بعضیا ها بیکلن. نه اونارو خب معلوم میشه نونده بعد عاقل باشه که هست تا این این شجاعت به ما یک فضیلت متعادل سخن بگیم میاد میگه آقا اگه کسی زیادی بی... کله بود چی ما اونو گفتیم احتیاط نکرد چی بله خب بله خب احتیاط زیادیش میشه ترس اونتا توجیه میشه به چی توجیه میشه به احتیاط احتیاط خیلی چیز خوبیه ولی بیا ببینم چقدر باید احتیاط کنیم ببینم از وجنات و فلتاط لسان برخی ها معلوم شخصیت آدمای ترسویان وقت این ترس توجیه میشه در ذهن انسان آدم می میتراشه توجیه براش میگه نه ببین الان معقول نیست عقل تو برم آدم ترسو عقل داره که از معقول صحبت میکنی آدم ترسو عقل داره معقول نیست الان آما چجوری بفهمیم یه مسئول سیاسی ترس داره یا نه حالا من گفتم بگه آدم سیاسی نیستم متاسفانه اینو میتونید برید بررسی کنید نمیدونم روش کار کنید ببینید چجوریه نمیدونم حتما یه راهی باید داشته باشه دیگه. بله؟ شاید داشت شاید منم بلد باشم این چیزایی شو ولی الله دردسر نمیخوایدیم خودمونم. اوقاتهای زیادی در باب خوف هست اولین مورد امتحان بگذارید روز بعد ان شاء الله براتون بخونم ولی از اونایی که نمیترسن. عکس عملی در مقابل ترسوندن نشون میدن عالی حرف بزنم جلسه حسن ختامش حرفای مثبت باشه. حرفای قشنگ باشه میفرماید حالا از کجا بخونم سوره آل عمران آیه 172 درباره قضیه احد هست الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم منافقین میان به مومنین چی میگن میگن مردم علیه شما جمع شدن بترسید ازشون ببین چه قشنگه قرآن خیلی شفاف روشن ترجمه تفسیری هم نیاز نداره الذين قال لهم الناس مؤمنین نای هستن که وقتی که بهشون به اینا رو میترسونن ببین چه چاکسون امنشون میدن این ناس اول یعنی منافقین لهم الناس ان الناس ناس دوم یعنی دشمن الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم مردم جمع شدن علیه شما فخشا و هم به ترسید از اینا اینا چه اکس نشون میدن فضاها ده هم ایمان تا حالا ایمانش یه ایمان 50 درصدی بود میشه 80 درصدی میشه 100 درصدی منو میترسونی این میشه تو منو میترسونی حالا من اگه میترسم دیگه نمیترسم و قالو حسبون الله ونی عمل وکیر اصلا خدا برای من بسته حالا که اینجوریه منو میترسونی فنقلبو به نعمت من الله بعد اون مردم بنا بود واقعا به اینا حمله کنن چی شد داستان؟ خدا بلا رو ورداشت میدونی اونا حمله کنن؟ امتحان خدا اگه مقدر نباشه اونا بیجا میکنن به ما حمله بکنن ملق میشه میفتن زمین اگه خدا بخواد امتحان کنه اونا به ما حمله کنن کی ما طرف ما اول خداست دیگه باید بریم بجنگیم خود یعنی امتحانو بیار وسط خدا من متحال می که اوزا رو من تغییر دادم و فضل لمی هم, هم سو من اصلا یک کاری کردم دیگه هیچ ضرری به اینا نرسه نیست نترسیدن گفتن حسبون الله خدا داره آدرس میده ده می تو نه از دشمن من از شهرشون رو کم می کنن. و طبعو رزوان الله و لاحضو فضل عظیم بعد می فرماد اِنَّمَا دَالَكُمُشْ شَيْطَانْ يُخَوِّفُ وَاَوْلِي شیطانی که دوستان خودشو رو میترسونه چقدر جالب میفرماست شیطان مؤمنی رو نمیترسونه دوستای خودش رو میترسونه حالا هر توسط شیطان ترسید بگو ها رفیق شیطان ما نمیدونستیم شما رفیقم هستید با من. خدا لعنتش بکنه شیطانو اون صوره جای این چیزی که ما خود این میخواستی بگی نگفتی فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین از اونا نترسید از من بترسید حالا رابطه بین ترس از خدا و ترس از دنیا و اینا بماند تو جزئیاتش وارد نشیم نباید ترسید خدا شاهد دشمن از ما میترسه و نصرهو به رعب بسیاری از مشکلات آقا و مولامون حضرت ولی از ارواهن الله الفدا با ترسیدن دشمن از حضرت حل میشه نه با اسلاحی حضرت نه با اده و اده حضرت تو روایت داره حضرت با ترسی که دشمن از او پیدا میکنه وقت این ترس همیه الان از شما شما تو قرص کن آقا یه دفعه همه حضرت میترسن بعد ترسیدن خلا... خطا میکنن خطا میزنن نمیتونن باور کنینو نه ترس اون چیزی نیست اون نابوده ان شاء الله هیچ وقت به این ذلت ظاهر نیفتیم تو کربلا یکی از اصحاب ابو عبدالله الحسین بود دیگه اینا که شارج بودن دیگه اومد بره میدان رو در آورد زرش که نپوشیدی چی پیراهنش هم در آورد رفت میدونست قطعا قطع قطع قط اش میکنن ولی اونجا همه تصمیم گرفته بودن برای امام حسین افتخار به بر مقام بیارن اصلا دیگه بحث مرگ و شهادت و اینا دیگه گذشته بود اینا دیشب شهید شده شده بودن همه دیشب وقتی بهشت خدا رو دیدن که جاشون کجاست شهید شدن تماشات شد رفت روح از بدنشون مفارقت کرده بود نه به بدی مرده باشن جانشون در عشق اولیا خدا رو بهش رفته بود پر کشیده بود سرمستانه جان داده بودن فقط فردو تصمیم گرفتن چیکار کنن روز آشورا تصمیم گرفتن که برای امام حسین یه افتخاری آه ایکی رجز میخونه یکی امیری حسینون و نعمل امیر هرکی میمد خودش رو معرفی میکرد یکی از یاران امام حسین یه تره تازهی زد اصلا سر زوغ بودن اصلا حواسشون سر جاشون بود انگار بیکارم میخواد نقاشی بکشه هر کی میاد خودش رو معرفی میکرد این از معرفی خودش گذشت گویاسن من چرا افتخارات قومی رو بیارم وسط من میدونید افتخارم چیه امیری حسینون وله مل امیر امیری حسینون آقا دقیق دلی به اونا هم اندات نفر بعدیشون اومد پیران شده در آورد گویاسن چیه شما خوام رکوشی بیا پیران شده روزله شوند کنارو پیران شده در آورد رفت جنگید جنگ نمایانی کرد آقا اینا هی از خودشون زیبایینشون میدادن جبه مقابل چه اتفاقی براش مینفتاد بگو رزالتش بیشتر میشد کفرش میگرفت، هقارت خودش رو میفهمید یاران حسین یاران حسین اینقدر به زیبایی هماس نیافرینید اینا هی دقیقه بیشتر میشه شما که رفتید همه رو سر بچه های با سهیر خالی میکنند بچه کوچولو تازیانه زدن داره <تصفح> یاران حسین انقدر زیبا نمایش ندید اینا هی داره کفرشون در میاد بعد که شما رفتید این کفر در آمده رو کجا تخلیه میکنند قدیما ما اصلا چرا زره تنشون می کرده بذم فلسفهشو شما بگم زره چی کار می که زریه شمشیر کارامد یا نیزه میومد زره که کاری نمی که زره یه لباسی بود که فقط می تونست زرب زربهای شمشیری که با نوک شمشیر بزنن این فقط درد میاد این فقط خون ریزی میشه فقط آدمو با شکنجه می کشه. جلوی اونارو میگیره ذره اینه ما وقتی اون وقتی که اون ذره شو از طند آورد یعنی من از اون زخمای کوچیکی میخوای منو با شکنجه بکشی هم نمیترسم اینا رو داشته باشید یه مشکلی امام حسین روز آشورا پیدا کرد یه مشکل شما تو رو خدا راه حلی برای این مشکل امام حسین به ذهنتون میرسه اون بود قاسم ابن الحسن زره به تنش نمی کن اباس زره بیار نمیشه، شه امو ول کن یه زره دیگه یه زره دیگه بیار امون جعفر یه زره دیگه بیار امو اینم هم بزرگه ول کن امو ول کن حالا قاسم هی نشاط داره هی می بره ابا عبدالله روزه قاسمم من میخواهم اصلا تو نری حالا میخوایی بدون زره بری یه رحم به اموی پیر مرد خودت کن یه تیم برادم قاسم کشت عبا عبدالله حسین کشت عمام حسین این روزه شهید متحرید دید معروف در مقاتل آوردن وقتی میخواست می‌خواست خداحافظی کنه حسین انقدر گریه کرد قشق کرد رو زمین افتاد <تصفيق> چی کار داریم می‌کنیم من میگم روزه بچه‌های امام حسن برای امام حسین فرقش با روزه علی اصغر و علی اکبر می‌دونید چیه اینا خیال پردازیای منه دیگه تحلیلای منه من نمی‌دونم درسته یا غلط روزه علی اکبر بیای تو، روزه علی اسقار بیای تو، آباء عبداللله حسین با افتخار دمه در ایستاده سر بلند پدر شهید به روزه قاسم حسین خودش یک کوچه لجستد در زار زار کریم نمی قاسم با من چیکار کرد؟ I'm a lion and I be knocked it high up.